Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma Sangarba Sangar, Ronemu Mubirun, a skoki kishwar. Ma duszman ra. Sangarba Sangar, Ronemu Mubirun, a skoki kishwar. Farmonie zit, ma rosturachbar. Barka w nieodem dar rohi Ezit, Farmonie zit, ma rosturachbar. Barka w nieodem dar rohi ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR MA ROHRABANI ROHI chudojem. پیوند و بستم با مصطفی ما روانی راهی خدایم پیوند و بستم با مصطفی دشمن زبون است هر جا که مایم پیغام فتح است الله اکبر دشمن زبون است هر جا که مایم پیغام فتح است الله اکبر الله اکبر ما همه برادران ما این بشارت را میدهیم کی؟ که الحمدلله آن آمریکایی که دعوای الهییت میکرد و ملکی خداوند را میخواست که با رأی خود تقسیم کنند ملت ها را به خود غلام بسازد الحمدلله شکست و بسیار نزدیک است این که شوروی شکسته بود شکست خورده شرمنده شده از خریته سیاستی جهان از بین برده شد ان الله آمریکا هم به 52 ولایت تقسیم میشود و این آن ملک به دست مسلمان ها فتح می شود این بشارات را ما به امت اسلامی میدیم. الحمدلله در افغانستان در جنوب و در شمال در هر و در شرق از ده ولایت زیادر مناطق در دست امارت اسلامی افغانستان است به سرپرست امیر المومنین محمد و مرحفظه الله مجاهدین طلبا روز بروز تقویه می شود ما به او شکر میکنیم که ما محاجرین موارا و نهر در این صف صادقین قرار گرفتیم در مقابل کفر و شرک نفاق الحمدلله تا همین لحظه جهاد را انجام دادیم و انجام ندهیم هرگز و به هرگز با کفار و منافقین دوستی نمی ما ما امریکارا در هر دو آلم با حکمی اللہ مغلوم نمایم برون کنیمش از خاکی کشور با توپی سنگین الله اکبر برون کنیمش از خاکی کشور با توپی سنگین الله اکبر الله Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! شهرس. این خاکی پاکی آزادگان است تکبیر خزد از دشت و از در این خاکی پاکی آزادگان است تکبیر خزد از دشت و از در الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر از خونین کفن را تا پاک سازم دشت و دمن را از گیرم خونین کفن را تا پاک سازم دشت و دمن را از چنگی دوشمن خاک وطن را قیم حراسم حر از تو پلش کر از چنگی دشمن خاک وطن را imema sufulakar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Rohi adura boja bibastan bota wóz boja ci kastan adura بی‌دستان پای تجاوز باید شکستن ای مرد مومن تا کین شاستان بشد مجاهد الحق مظفر ای مرد تا کین نشستن باشد مجاهید الحق مظفر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر زودم زی مسلم اصلا ترسم از فی دشمن هرگیز نلرزم زودم زی مسلم اصلا ترسم از فی دشمن هرگیز نلرزم دستوری قرآن باشد چی آرم حکم کی داد دست آماده باشم دستوری قرآن życie hukmek do dasmo, do boshem, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar